الله سرونی که آنجا از بحث راجع مبحث اجماع بود و بعد از سرونی اجمالی آنجا حقیبا معنای به وارد بحث اجماع در طرف خودم در شیعه از ما در دوران روایات تا حدود اواخر قرن اواصف قرن سر بوم داریم مجموعه که در روایت داریم یکی مثل همین روایت آمارد به حضره است این من مجمعه یاری که توضیحی گذشت و بعد انشالله بیشتر حضر میکنیم یه مورد جایی بود که ادعای اجماع بین اصحاب بود که موردش رو محض کردیم چایی بود که از زبان امام سراتو و تفاره کلومن قبلنات و حالا که نتعاوید شدی کم مورد شدی کم اونطور نیست کرد او استدهایی باشی و آخری مورد که مورد مدنی منزد داریم تحبیلی سراجه به لا امت و اممتی علا سلالهی امام خالی نرمو شده حوال حسن سالس در روایت این هم شده که حضرت ترامو داره از دو سوال و به جبر و تقریزان هم به بین, بین سوالی که شده ادعا شده از احواس نامه به حضرت درشمند و اینجا بحشه اختلاف شده و شما نظر مبارس چیه؟ و حضرت مقدمه رو در موجه دارن در اون مقدمه بحث آیه روایت لا تشنم و اومتی حضرت خطا هم نه حضرت در در اونجا وارد شد. ما پیلت این اون که فحصه فحصه خود را نزده بازم فحصه همونشی ناخصه جایی این روایت در میان رواییات احل بی ما منصوب در احل بی در نیمه کردیم این رواییت در اولی مستر این که آمده تحفه حقوم دره که احتمالا این تحفه حقوم در بین حلبی خوایش ها ها در حدود نیمان های دوگون، دوم دوگون، چهارم من منزده باید. نوشته شده، سی سد احتمالاً، یعنی که در بعضی مسادر محمد اکی در بردیوه شهر فدوه از مشالف شهر مفید، فعلاً توی مصادر ما دقیق برش پیدا کردیمانا این بردیوه که در راسته شیخ مفید صدور بوده با استاذ شیخ مفید و رواهن به شیخ مفید کسی هم اما یه مورد باردن پیدا هنگه این شیخ کسی هست شاد اشتباه به کسی دیگه شده. هر و هر به شادن به ما نرسیدن در تراسی به مهموم شیخ مفید و محصوصا کسا که در قرن سیزده ها و شارده ها ادعا بکنن که در کلمات شیخ مفید مطلعی بوده که الان ما نبینی حالا نهدی زمان شیخ مفید باشه ممکنه اما در زمان ما مثلا 100 سال 7 سال 50 سال 7 سال که کسی اضافه که مثلا آثاری یعنی از شیخ مفید ازشون تکردیشون نروی کرده که فعلا دست ما نرسیده خمقا حاضر پنیر از این چیزی که از سهی ما حتی مساله رو قدیم تردیم اگر چه چرا رسیبیم اصلا مرموم نشه راشون که صدا ای سال بعد از شیخ مفیده در فرمه پنجم ششون ادعا میکنه که شیخ مفید دوست شیع چهار زفت ایشون مثلا شیخ مفید هم. خیلی تعدیل بود الان که شیخ مفید نیست کلمه هر برمه در عصر یا الان در بازار شیخ مفید نیست بعد ایشون به این مناسبتی در اصحابه امام سازه نوشته شهار هزار اصطقاط تحبیر اصطقاط داره در ارشاد اربطه حالا اصطقاط و از این داره تحبیر در 4000 اما اصول چهار رو نداره میکرده آن ما از آثار شیخ مفید داریم یعنی هیچ یک از آثار شیخ مفید قبل شیخ مفید بعد شیخ مفید بعد چون که موبید اصداد نجاشی هم اصلاحی برید شهر موبید تا عکسی بخشه نجاشی مرور کنه چون این یا نکنه کل حصولی رو که نجاشی در اقفا بگذار شمار در شیش تا نه این استاد اصدادش چهار تا عکسی بخشه چون شیش تا یا هست تا اقتفا بکنه کل حصولی در فعرض نجاشی شیش و کل اصولی شیخ شیخی کل هم بیشتر فرمان اصول شیخ مزار فرستی شی خود ده هفته تا صدش هشت هفته یا هفتاد دو صد یکی دیگه این حدود یکی دو صد کم دو صد زیاد مجموع ایه اصولی که شیخ نوشته حدود هفته تا شیخ نجیب شامون له هفته و این با چهار صد نه یکی فاصله داره هر دوشون خیلی فاصله دار نه یکی خیلی مستر شیخ موفیشی محلن و که من خواهشون نبینه شهراشون من بزرگواری مسادر زیادی در اختیاریشون بوده مشاید زیادیشون دیده خب رفت میشه با که اجمالا تحبازن ما به شقبوی بکنیم هنوز که من تحباز های بشنم احتمالا اشتباهی به شاید چیز دیگه بوده اشتباه کرده و به هر حال اما راجع به این که مثلا ترسومی در این رساله که ما در طریقه الالله موزه شیخ هستن. اگر یاد نمی‌کنم، اصلاً اگر مدرنی، اخلاقی نوشته وارد اسم مارمونه تاکل اول بودن، برده سیاره‌مون شکل می‌گیره. از رو سال به بعد، مار موسساتی که رو کرد. کسی در بند سیزدهم فدا هم داراست هم گاز هم. پیش شیطان می‌گذشوند، آب نمی‌کند ولی. حالا هم چاپ شده از زمان ها بیش رساله که حتی 16 از این احساقش هم درستن باشه این در آمده این حلیه ده است که محبسفل به بدود 16 سفر هست خیلی از هر اینجا رفت روگوه انفرادی داره یه اولیه مسادره اصحارمان دقیقا هم از طریق نیمیشان خبر ندارید و پس اجمالا مقدار بیشه و از مشاهده ها در شام دیده اما به هر مرد مختلفی مصادر مسادر در حالا تیجوری بشه از دیره این حدیث رو از کجا گرفتیشون مثلا سی سد و شست و مثلا شعر و تاریخ این رواست هم سه سال قبل صبر دیویش شه. ما فرزون فرزون نوشت، نوشت، نوشت این مستر که ما در اختیار داریم، که خوب شد، مصدرش بیان نکرده، فعلا برای ما اعتمادش مشکله. توی مصادر اطفال ما هم در اون زمان ایشان هم. مثلا معاصر زبان ایشا قابل اشمون کورینه. ما از به نامه توسی چیز مفیدی این امیدوارم دارید ولی داره خیلی صحیحی نمیکنه این صاحبا این رو باید نمیکنه در برن نمیدونم تو شما یا هفته همه احتجاج به نظرم چشم باشه مصاده برده دیگه مرحومه احمد زنگیه تبرزی تبرزی نستازه برونی تبرزش در کتاب احتجاج این رو برده اون رو چار سر به پنس هست مختصف با اون محنه تا و افتدار رو دهه که ترخیصی از اون مردی باشه لکن آدم چون یه جهبت بشیم جمیزمانی بسته رو یه جهبیه متعرض شدیم این انصافش اینه که احتمالا از مستر دیگردیم و از مستر بود باشه چون در این روایت احتجار زیادی هم داره و یکی دو سطر زیادی داره نقیز زیاد داره همون زیادی هم داره لذات به احتمال بسی ایشون از اون مصدره اصلی نهربه کرده باشه بایده اصلا کلو بود شواهد شبازت که ایشون اصلا کلو باشه اصکرن صابرن محسنن هستن تا بود در برد دهم اسمش در کتب اصحاب ما آمده تا قبل اصلا دخون اسم خودش نه اسم محلق کلن نیامده. یعنی اگر کتاب در برد شارب نوشته شده تا قرم در آن شیش قرم نه اسم کتاب و نه اسم معنی هیچ کدوم در مصادر ما وارد نشده نه شیخ نه نه نشراشو داشته نه هرگاه نه نه, نه, نه دیگه ها نه اسم شخص بردم از این چسته. از این کتاب رواید کنم از به ذهن ما فوق غرفات بریبه که مرموم صاحب به احتجاج پس تا حقه به غور شده باشه مسترد خیلی خوب عراضه بیشوند مسترد احتمالا مستر اصلی بوده که مستر احتجاج هم بوده و تفاوت داره کم زیاد, زیاد داره حدیث مفصلی است به هر حال یه تفسیری هم در ذهن خود حدیث آنه که بس نگاه یه از احادیثی که شرک مفصلی داره برقیقه همغه بگل امره ایم داده رو از امام ساده نمی کنه که لا و لا بین الا امره و لا اون شرح مفصلی رو علا تردید سختی نه امام حادی سرخ الله سلام دادن ترک امر بین در میان یعنی اهل سنت هم بهش پیدا کردن نسبت نسبتی ما اداغات در تاریخ اسلامی به انمال ادنه امان سوامون باشم بس فخر فخرازی در غرض از کتبش تماییر به این رعی پیدا به رعی امروین امروین مثلا همین روایت مخصص هم. یه توضیح نوزه که مراد امروین امروین چیه دیگه هم شرکش هست چون اصلا میزنانی سیگه فخر فخرازی هم تماییر پیدا بکنه نسته به شرک تبه شریعی در که هم میکنه به امرو بین که مقدمات بعیده از دست انسان خارج جدی مقدمات غریبه اختیاریه که این هم در دیگه از تلویات از خواب ما به عنوان تصویر رو این ما نبید فخرازی دست ما را از مقدمات بعیده هم مثل اصل حیات ما اصل زدگی ما هوش ما درجات هوش ما سرخط ما اینا از از مقدمات مثل قریبه مسته میخواهم دستم از هکون بده یعنی تصویر دکنه شون یه امروه این هم بکنی این مقدمات قریبه جبر مقدمات قریبه اختیار لا جبر و لا تفیر نه جبره این یه تفسیریه که در واقع فخر راضی از کلمه امروه امروه این بکنه از خودش وقتی در حدیه از خطور از خال ما آمده این, آمده این اشتباه این تفسیر از امروه اید از تفسیر از فخر راض اجمالا هم هم هم نیست. تا دفتیگرده پس نیست از برای معنای امرو بین عمر رو به این معنا که مقدمات دریده جبره مقدمات قدیده اختیاره اختیار نه جبره نه اختیار ما بین همه امرو بین امرو بین امرو بین من الان که ما خواهیم این حدیث اون باره که شمی ده که انصافاً به لحاظ ترخل عبور که از اوساط علمی ما دور بوده، به لحاظ احتجاج تبرسی بهتر بشه قبول کرد چون من اون در مقدمه گفته که روایاتی که رو در کتاب رو بردن مجموعان هرگی خب داره داره باشه الا زمان از و هر حال برای حسم زن نوابه مرحوم تبرسی شاید سنده تبرسی یعنی شاید مستریت کتاب تبرسی رو اون مقدمه رو فیزه کرده بهتر باشه تا کتاب تحقل حبور که رو این روایت مستر رو باید شده این روایت مونه از آن داریم از این روایت همچنی که زیدوز خوندیم یک نقطه ای توش داره که از کردیم در کلمات اهل سنه اگه یهاتون ای باشه این دوست روز پیش باشیم اهل سنه سه مثل اگذانه یه مثل که غذاری مثلا به همین روایت این روایت این روایت داستش که اعلا زلاله تو این روایت چون دیگه من نایدم این یک نقطه یه اشکال اگه باشه ما سابرن ترکیم خود اهل سنه تر در کردن در لا تشتم مهمتی این زاشت به همه مرادن نه این که خصوص فوقهای ما یا تون باشین اشکاله ده. این رو باید این کیابی داره سه نی کنه لا تشتم مهمت الازاله و همی جور معنا رو کنه نه اونطور اون که ما آنه دون مراد کل مهمته یک اشکالی کردن و در باید باید باید باید باید باید باید باید باید خوده قداره و دیگران که لا تشتم ها امتی بنامشوند خوبه ما رو امام همین رو میگه اگه امام حاضی سلام الله علیه همین رو بفرماین بفرماین لا تشتم اون نیست که اونا گفتن مرا کل امت و اون همشون امت این مثلا کل امت بارا این که قرآن یعنی نیامدن اجماع و عنوانی دلیل در مقابل قرآن و سنت بگیرن یعنی اشکالات رو که احر سنت واده کردن به دلالت حدیث در کلمات ما به نحوه اشاره آمده خلاصش اینه که مفاد حدیث اون چیزیست که مجموعه امت نرد کرده، بزرگان امت مجموعه نکل خصوص اجماع که یه مطلب، یه مطلبیم این که من فرمودن را بازم از آن کار می‌دارم. دیو اصلا از خالد را با یه در مساله علمی می‌مانده. در مسائل علائم به ما ما و شما هم اتفاق <تصفيق> داریم که قرآن نگیریم و صبر می‌کنیم. حالا وقتی قرآن را جلوی قرآن اشتباه داریم. خدا کسی را عرض داده را اشتباه بکنیم داده. این اجماع صور ما هست. اجماع من. من گفتم چهار سواری اینکه این اجماع بیرید در روایات ما هست. من از این روزاده مرافق که روز تو این روایت امام هادیه همین اجماعه. روایت امام هادیه. که مسلمان ها اجماعه تنید پرغمبر فرنانی سای کنفیقه اون خلیفته این. این که داره خلیفته این داره وقتی یه اجموع که به بارها مراجعه میشه وقتی به مراجعه میشه که آیه ای و رسول و بلدین آمن و بلدین یه که مراد امیر المؤمنینه امام تمسکی این حدود یکی دو قرار بلا اختلاف نو ها امام یه مقدماتی که ما برای معارف دیگی باید به این ایداره گردیم این مقدمه شیدن کلمه و میان می کردن تو مسئله جبر و تفویض میگن رویه ان ساده کردن اون بالا جبر و بالا تفویض برعن و بین عمره این یعنی اصل نفی وجود این یعنی این کلمه لا تشتما امدی علالذالله رو ایشون جنگ کردن آوردن برای آیه مبارکه نماوری 15 با حدیثی که می قالبون کیفیته بعد فرمان نتیجه گیری میشه که بعضی از بعضی بذار بیاو تا کیزام با اینکه تو اینطور میوام صادق فرمون. بعد ایشون میاره امیر شهر نشکیده. این خلاصه این رساله حالا 4 5 تا در یک در دیگه خلاصش اینه. پس برابریم این تا اونجایی که ما این نتیجه ای بخاییم. دوران به اصطلاح نصوسی که ما داریم، و روایاتی که ما داریم به اجماع خلاصش اینه. یک مقدار اجماع در مناقشات علمی که تقریباً شبیه اونچه که شبیه در منطق به اون جدن میگن احتمال بکنیم بر مسلمات این دسترک مقابلت جدن نیست واقعش واقعه شکل نه یعنی اتفاق همه مسلمان ها این و دیگه اونجا اتفاق به اهل حل و عهد و فوقهایی که کل مسلمان امام کنم کلی موسان برگردیم و نمو. این را یک یه بسمت. دو قسمت هم اندردیم تمثب شد این وارد شده عنوان این که لاخلاخ بین از خواب روز موارد مراید کرده. یا مصار. این من دو مورد خیلی کم نمیشه مریاز هم دیگه ما اون چی که از اجماعات در عقد محصومین داریم همینه و اینن مجموعه هم داره بفی هم توبزیب دادیم که اولا خب حدیث محل کلام مثل همه استاد قبول نداره حدیث رو سعیف میدونه حدیث مارد نهان داره و ما هم که قبول داریم هم نه بر مشهور شد نه بر اجماع تازه خبر نه مطلقه اجماع نه مثل فقه نه مثل حقص و قیل مثل رعی و اینا مثل فقه و فتوا و فتوانه خصوص خبر خب این که به درم نکرد لا تشتمه اومتی علازالالم از روایات اطلبهی ثابت نشود، سیره واضح واقعی هم که مثلا اجماع فوقهای شیعه باشه یا امین تعبیر رو کار برده باشن این هم در اون حد زیاد نیست موارد کمی خلاصه راجع به این لا تشتمه اومتی علازالالم و اصل اجماع و خصوصیات اجماع ما در مجموع این روایات احرابت چیز معتبری پیدا نمی کنیم و غیر این که در روایات زیادی مثال که اکثر آن لایه احقیل و منطوران ما می کنیم همونم و مضاقا به این که خود در موارد زیادی زیادی یه خود فلس رو مثلا اجماع سهاروزه که و سقیف محل مستلام قبول نداشتن اضافه بر تمام اینها ما یه ای اصلا مورد داشته باشیم ک راجع به اجماع بحث بکنن صحبت کنن فرم همین امام امامهادی که اونم از اینطور این محدود میشه لاس اشتماع جمعی اممت و نظام حاسی میرون ارز این بحثی که برها مطرح شده که اجماع پیش شیعه کاشف از قول امام ظاهراً مسترده به روایات نباشه این خلاصه از اول بحث امروز تا اینجوا کاشف نمیه این به روا اینی که اجماع در دین حدمای ما مشهور شده بردها در مقتر و بردان با عنوان کاشف از قول امام ظاهرن تو روالیات نهامده این تمام بس اینه اینجورتی آخری که اجماع به اون معناه هست این کاشفی ها تو تعیید نمی نه یعنی اون هم که امام حضرت حاضی حضرت حاضی حضر که تمسکی میکنن بازن در نمیاد که اجماعشون کاشف از قول محصوله ولی ایشون میگن به اجوان از کتاب و روایات و آیات باید برگردیم و حمیرون مومنی اینو کشم نه باید برگردیم بردادم با این رو میبعیمه این من فرمانه لاجم رو برای صدیب برای همان بینم بین اصلا سوال اینه تو با ما مقدمات داری بودیم پس بنابراین این بحث چون این بحث در کلمات های مرموم استاد خوندیم براتون مرموم شه بخصه کشم کنیم به نح و همون سه موازا بخشوی و دخون و به هست از شد با که ما تو حالا از مجموع ارواد هیچ کدوم از این سه معنا از روایات در نمیاد. نه دوت نه تزمان نه هست این سه معنایی که الان در بین حصولین ما معروش در از بوده امام. که مرحومی شهر از را راده گفتن مرحومی داخل اونهاست و ما تحقیل که بزرگان مذهبی یک چیز گفته انسان هم هست میزنه که قابل صاحب مذهب همین باشه این سبت که گفته شده هیچ کدام انصافند مستنده به روایات نیست لذا به ذهب میاد که علمان این را هر درست کردهن دوست کرده. این اول ما اول مفهم. مقدمات کار تا یه باشه هاش بارد که از که ها اطباع داوددن هم اجماع صحابه رو حجت میدنند فقط چون میگن کارچیم از بال پیانبر این رأی هست اینه قبلش شیعه داود خب قبلش شیعه در دوران سمام حادیث داوددن درست داود ابن علیه اصخانی هم عقیدش اینه که اجماع صحابی به خاطر کاشفیت پس اینجور نبوده که این بحث در زمان عمه محصر نشده باشه شبه نه؟ من از اینجور بخواد بحثی محصر بشه نش. ما الان در میان روایات خودمون پیدر اختیار داریم چنین چیزی که کاشف باشه که به سرعه معلیمون چین چیزی دلالت بکنه که امه ولی حجیت اجماع رو کاشفیت گرفتن نه موضوعی این یعنی که اجماع خودش بلخص از این که مسلم این که نیست اما این کاشفیت هم در روایات نه آمده و لذا به ذهن میاد که این مسئله کاشفیت رو بعدها حساب و قاعده اصحاب برموزن نه مستند باشه به روایات استنادی به روایات نداره و نمیتونی این رو با اصطنابی به روایات درسو کنید. اها بر مبانی کلامی. اصلا مرموم شیخ از قاعده روی قاعده روی مقنی کلامی درسو کرده. مربون سید مرزان برای همینجه که چون خب بلاخره اگه شد. امام محسوم چون در هر زمان هست داخل در این قوقات. پس اثبات میکنیم قول امام. آقایی متاخل از باب حد که ما اگر دیم علماء ما و مطلبی رو گفتن حدسن میشه خود امام رو از اون کشف کرد از که ایازون باشیم باشه پیروز مثلک حد در میان کتب احل سنت هم هست اگه ایازون باشه از که این در کتاب قدرالی مستسفا سه تا مثلک اساسی رو ایشون آورده، من عباد قدرالیشون هم جمع جور هم مرد مولاییس یکی آیات که خود ایشان اشکال میکنه که گفتیم یکی روایاته که ایشون قبول میکنه و اشکال از جواب میده از زرفشون سندن دلالتن مثلا جواب هایی میده که بودنش یکی هم مسلک عقله که ما هست بشیم اون مسلک ثبوت در از ایسا به آمده و حاصلش این است که ما اگر دیگه ادهی از احلی مذهب اجتماع کردن می‌شولیم هر سو زنیم بیایم که این مال همون مکتب، مال همون مذهب، این هم گفتن عائله اهل سنت. پس در حقیقت اجماعی رو که اصحاب ما قابل شدن همین مسئله کسب می‌نن، لکن اهل سنت اجماع رو مستری گرفتن از مصادره تشییع. شیعی نه اجماع مستر نیست، بنابر هت کاش فصل امام می‌نن. مثل خبر واحد میشه کلاورا ما این توضیح رو دادیم ما در اصول دو جور سنت داریم در اصول حجت دو جور داریم یک خود من مستر تشریف این کتاب خود جزانه. یک یکی من طریق در مستر تشریف مثل خبر واحد خبر واحد خودش خود جز مستر تشریف نیست ولکه این طریقی که ما رو به سنت یا به کتاب میرسونم اصطلاح اهل سنت اجماع را از محنه اول حجت میگونن مستر تشکیل میگونن شیع آمد اجماع را از دوم حجت گیره این طریق اون مستر تشکیل کاشف از قول امام پس و بر هم اون مخلق حرص یا عرض که در کتابه از دادی آمده اگر اون مخلق تمام بشه همی با شیعه بهتر بخوره باید کاشفیت کاوشیت بهتر این تا اینجای مطلب شما رسیدین تا نیمه های قرن سوم تا دوران هیبت سهروردی این مجموعه را البته در این میانه ما بعضی از ادعاهای اجماع داریم که مثلا آتش مانیث البته که در دوران که مثلا به نحوه قضمان شامل امام هم میشده اما تو شما نیست از آزفن در برایات ما نیست ارز کردن چند در کتاب موقته ماده وجود به نظر سی سر موردی ها بیشتر کمتر ادعای اجماع اهل مدینه میکنه یه وجه تو اهل العلم به بلدی حاضای خلونو کنم از رکت و فقه های بلدی خلونو چون مادر کرد امام صادق و امش بوتاخ در و جایی هم اسم علی عطا این ابو محمد به احتمال بسیار قوی علما اهل بلد شامل امام صادق حد میشه تو بعضی از روات یک یه بیاره پیدا شد استفق کل من غیرنا از امام صادق این شبیه عبارت مالکه خیلی شبیه بود و ارز کردیم چسایی که طرف ما هستم مدینه ازشون ارز کردم مالک فوقهای مدینه رو رجت میدونه اشمارشونه مالکی ها مطلق فوقها رو رجت میدونه چون مدینه دارو هجره بوده بعدم یه رویات دارو که خداوند متعال پیغمبر فرمون خداوند متعال از مدینه شر و سوق رو برطرف میدونه این اعتقالشونی که فوقهای مدینه قداستی دارن اگر اجماع کردن میشه کشف و حق بکن نه کشف اون اصلا مسئله تشریف اونها هم خصوص اجماع عرض رو کرد اون وقت این البته هست این ادعا از طرف این ما نشده مثلا نشده این میمان اما مالک که اون وقت استرد خط اون وقت ادعا میکنه از کتاب ها هسته نوشن رو جدا کردن و مواضیشون هسته سابقه اكثر شيء ناجح به حاله استخراج که تو حاشیه کتاب خودونو داشتیم و ایده از مواردش هم این ماست راست خیلی عجیبه. به دوران در سومه اون شخص که من الان حضور ذهنم ندارم از موادش هم با اینکه روایت ما هم نداریم اون رو اشمالت نقد شده با فتوای خودهای ما میخوره. اینم خاص. لكن اخیرا چون یه دوجل کتابی سه کتاب, کتاب داریم که از علماشون این مواصیل نوشته. و این اجماعات رو جدا کرده اجماع علمه نگاه میکردم دیم نه بعضی از مسائلش ببا نمیخوره از مجموعه مواردی که ادعای اجماع کرده ماله تیار اجماع میخوره این صافر به مکتب ما میخوره لیکن بعضیش نمیخوره اما این چون ای پیش ما نیست نداره این چون ای پیش ما نیست و الا اگر میخواستیم تو بحث اجماع شدیه عبارت رو یه جوری در عباره شیعه می داشتیم خیلی به درم خور بود خیلی واقعا نافع بود که متاسفانه نداریم این راجع تا قیبت صغرام به درمان اینشالا تا اینجا شوشن شد تا میمونه بعد از قیبت صغرام من توضیحاً ارز کردم اصولاً بعد از ساقای دیویس تا پنجام حتی شاید یه مداره زودتر سال دیویس یه حرکتی بین اصحاب ما شروع شده که انتقال از عهد نسوش رو به فتاوا اسم شما گذشتید این توضیحاتش رو سابقا گذشت از کلیم آن بروجلی از اینها تعبیر به اصول متلقات فرمیدن خب تعبیر خود ایشانه هرش برگیه نیست مراد از اصول یعنی کلیات متلقات یعنی استنبات نیست از اهل بیت درفته شده مرخوزه از احل بیت مراد ایشان نیست. خبستانیه روالی که معروفه انما علینا القاول اصول و علیکم و تفریح که آقایون قالبا تبدیر مهم به سعیه بزنطی سعیه بزنطی انما علینا از حضر رضا سامو داره و اصول و علیکم و تفریح ما یه توضیحاتش تابقا در از سر میگه باید ضعیفه تصور شده سعیه سعیه نیست شرفش مفصله میگفتیم دینا رو جه تکرارش نیست و تعبیر و اصول متلقات � روی این باشه که اینا این نصوص هم این روایات هم دستکاری توش نشده همون حالت کلی روایات تفریق نیست و متلقات یعنی محفوظه از اصول این ما. و اصلا مطلب ایشتا مطلب خوبیه ایشون طبعی این هایی که من از شاگرده ایشون سهراتویشون توضیحی در اقل ایشون نفرمیدن از سرم کلار من ما رو گروزید کمیان زمان معمان آشان کریم بوده نمیمونن تو بخون حالا یه از اون یه کلمه داشته با همون ایشون گفت که به اون قصود نمیده مندم یا با, با وحدت باشه یا با توبید وحدت که فعلا جواب نمیده توبیدم برای من سخت این هم لطیفه فعلاً لطیفی ایشون برمیانم به بروچه که حدود سی سالی در بروچه بودم و کارهای زیادی رو شخصاً اونجا انجام دادن اصلا کتاب طهارت رو یک این تجیزه اصلاقی کافی و تحلیل و استفساری ما همه هم کار رو رو جل دید. سی سالی که ایشان در رو با فراغت با مشغول خب اصافرم در این قسمت های من خودشی اخیلی زخمتی حالا ارزیابی زخمتی ایشان و آیا واقعا به اون مقدار ارزش داره نداره و حدود ارزش کاری ایشان اخیلی بیدرسی بیاد چند بار رو زد کردن که بگه ارز حاله صحباتش نداره. ما از کردیم که اونجایی که من دیدم در کلمات ایشان این نیامده توضیح اصول منطرقا توضیح رو که ما اعرض کردیم اصحاب ما وقتی که این روایات رو نمشتن اعرض کردیم تدوین علم اصلا به صورت رسمی بین اصحاب ما از حدود سالهای 80 تا سالها در کوفه ما هست در بسته به نهر بود بوده خودی زعیف بود مدینه نسولن زعیف بوده بیشتر این تدوین در کوفه شده. البته در کوفه صدور رب... روایات در مدینه است. تدوین روایات در کوفه است. خوب دقت بکن. یکی از عوامل تعارض روایات هم همینه. چون یه چیزی که شده، یه جوری تدوین شده. <تصفح> یکی از عوامل اساسی تعارض، چون حواشی دقت نکرد این تعارض چه شکلی صورت داشته. یکی از عوامل اساسی تا آرز اینه یه جای شده صدور یافته یه جایی دیگه نوشته شده این تفاوت بین این دوچه ها مخصوصا مثلا در کوفه خط اعتدار مثل زراره بوده خط خطه تندرو بوده مثل مفضاره نامه این یه جور می این یه جور می نوشه, این جور می نوشه. فکری این یکی از زیر بناه های رو در آرز رو در بوده اصط این را که این قسمت در این قسمت ما هم نوشتهایی منظم داریم مثل کتاب حجم محاویتونه اما با که بیشترش نوشتهایی نامنظمه حالا این اسمشی مرحله اول تدویم مرحله دوم مثلا فرسوی هستر به بعد زمان نونسد جعفر بعد دو کار در شیعه کرد این مدار خودش منذر دو سال کردن از جعفر سال از سوال کرده، حضرت حادی سوال کرده، حتی از حضرت مهدی به عنوان توقیات سوال کرد. این مزایش ها بوده یه مقدارش هم تنظیم بوده یا با اولاد اون زمانی ها تصمیق لهم مسنف یعنی روایات هرکی یک جا بیارم روایات زکاسی یک جا بیارم روایات سلاح بیارم ببین شدن مسنف تصمیق مسنفات از ها مسنفات مراد اینه اصطلاح مصنف یعنی کتابی که یعنی سنف, سنف باشه <تصفيق> یعنی سنف زکات رواست زکات رو یک جا رواست هش رو یک رو یک این مصنفات اصحاب شروع شد به اصطلاح و اون اولیار اسمش اصول گذاشتن شد اصول و مصنفات این اصطلاح و اصول و مصنفات تیه قدیمه پیش اصحاب ما اصلا برکومه شیخ صدور در اول فقید داره که جمیع روایاتی این کتاب از کتب مشهوره است حالت که علیه هم و علیه مجموعه از کلان فران و غیر داده که من اصول داره مصنفات ابو یعنی اصلا نه اون نیست حالا این من چون نمیخوام وارد این بحث رو سیم چون برس خوالباهده نزدیکه ازای بیجنر میشونه اونجا او باید تحصیلی بیشتری برایشون شر حالش بگیرد. در مقدارش میخوام من اجماع در آن درست بکنم. دنبال اجماع ولی خبر باشه. اصول سنت نبوده. اصول سنت نبوده؟ نه. اصول. البته اصول دای سنت هم بوده مثلا. مثلا از ابزاریشک معلومه کتاب سالت هریت از اصوله. با اینکه اصول یه اصطلاح دیگه ای بود. اما من نمیخوام که الان اینجا توضیح بدم که چطور میکشه. بعد از این دوران بعدی دوران اصول مصنفات اصحاب شد مثلا حسین زید کل روایات سلاس و جمع کرد روایت زکات یکجا، صلات یک حج یکجا حسین زید که معاصر با امام است خب این مرحله دومه در میان مصادر اصحاب شرح مفصلت و بعد از هم صابرن توضیح داده، لازم نیست من مرحله سوم که بیشتر به ذهن میاد از سالهای دیست پنجاه شده این ها این که این کار از این ها مرحله که شما هم الان این مراقلی میتونی انجام بدید. الان شما هم مثلا شما بگیم برای مرحله اول جمعی ارواز حلیزی یک جا دیدیم بعد جمعی ارواز عبدالله مونگوکر یک جا دیدیم بعد جمعی ارواز ممنوس خب این مثلا کتب اولیه میشه در بودا خونه همه چی با او در قطع بعدین تمام روابط صلات یکجا بیارید روابط زکات یکجا بیارید این مثلا مرحله دوم میشه مشکلی هست یعنی الان هم شما میتونید مثل مرحله اول و دوم انجام بدید مشکل نداره مرحله سوم چی شد آمدن فرض کنید کتاب اونتون صحیح لارسالو دیدن فرض کنید باب باب کردن تو این باب 4 قرار wurde مثلا باب زکو ثغر صدوق مثلا اینکه یوم مریض رو قبول پنج دارون بود آمدن مکررات هست کردن سنده ها هم هست کردن سنده ها را هست کردن مکررات هم هست کردن طبعاً بعد درازش هم متعارض بود در تا آرود هم یکیشه قبول کردن یکیشه هست کردن یکی، یک قبولی که دیگه فرزمونی تصیب میفرمونی چی شد شد یه مثلی خیفی این همون سهار برده به اصول مطلقا این اصول مطلقا داره به جدیه خبه ایشان تو گاهیم بشین گرم فقه محصور یعنی فقهی که روایت اثر ده برد گاهیم بگن فقه منصول شما میشین کار بکنی حالا جاول احادی تو بگیدی در هر باقش اولا روایتی که قبول داری انتخاب بکنی سفرش حصب بکنی مکرراتش هست کنیم معارضاتش هست کنیم موتون رو باید بشه هم گذاریم میشه فکر رو باید میشه خب خواهی نتایی برای که انتجام کتابی شد سوشی بحثی شد سوشی برزه هستان میخواست هم روشن شد این شد اسم سیاه. اصول متلقات به تریه یه مرحله در فکر شیعه بود از کردیم کرارن اونی که الان دست ما رسیده یه شرحی داره که داشتیم جنس قدیدتن مستری که روی اون ترتیب نوشته شد این فقور حالا ملاحر که از کتاب تکلیب شرمقانی ملاحر احمد از سکن است، کسی دیگه احتمال احتمالا احمد شرمقانی شد بیشتر از برایه باشه این کتاب فقور رزا مهم این کتاب دینه ولی زاد من در این مورد خاص باشه خود من اعتقادم اینه که اون در این کتاب آمده همهش مستند به نصوصه خیلی از هم از به رفته ها لذا ما الان در غیر این کتاب نداریم همین شهادت سالسه مرحوم شیخ میگه در نهایه کذیه نه از اصحاب روایت نه اینکه اشد معنی ولی لو جزء از الان خب الان چیزی چون چه نداری الان دست ما هیچ روایتی نداره اما تو فخرالدین تو تشهد داره عشره هزار معشره معلیات نعمه وسی این تو در هیچ هیچ در هیچ حدیثی در هیچ کتاب کتاب که این نشون میده این شاد سال تو که اما نمیاره یعنی کاملا واضحه که در اون زمان این روایاتی که در 14 سال صد شد یا به اصطلاح اونجوری شده. شده. الان تنها مستری که ما داریم اون تو تشهد راهی از آن تشهد تنها مستری که 14 سالسه رو داره همین کتابی که وارد به این تعبیر اشدنا علی که به ذهن ما میاد که تو شعادت, تو آن هم بوده. این شهر خیلی در روایاتون از هم میخواستم پرسیل بشه و از اینجا انشاءالله میگه تاید شد شد ما فردا نکته مهم رو که می‌گیم خیلی زیاد ترکید بکنیم که این فقره دا سالهای 3010 نوشته شده تقریبا سی 10 و ده قرن شارو به نظر ما این یکی از بیر بناهای اجماع در است است رو این کمتر کار شده این منسوس. خیلی اثر گذاشته آی بروجردی هم برای این اصول متلقات ارزش خاصی خواهد بودن آهای بروجردی ارز کردم الان در حوزه های ما هم و در رو رو قم صحبت میشه یکتا نجف اونه که از قوم برفتن به این عنوان که آی بروجردی خیلی برای اصول متلقات ارزش خواهد اصول متلققات, متلققات، کتب فقهی که فتاواش این نصوصه این اسمش اصول بنده اسمشه چی گذاشتم؟ مرحله انتقال از روایات به فتابه این مرحله انتقال این در قبل قسمی ما در فقه سنت همچین روایاتی نداریم چین فکری نداریم این مال خاص ماست در هیچ فقهی نداریم مرحله انتقال از روایات نصوص به فتابه آقای بروجی برای این اصول متلقبات هی ارزش خواهدن و من توضیح دادم اصل این مطلب شده ما محمد امین دینشون نبود من نمی‌تونم نشون بدم بده تو کلام اصل این مطلب مولا محمد امین استرابادی در توادول مدنیه داره چون مولا محمد امین استرابادی که از اشکالات خیلی قویش بر اصولی ها اجماع اینا چرا به اجماع تمسوقی خیل تونده ایشون بر علیه اجماع زیاد صحبت کرده مرحوم استرابادی لکه میگه دو مورد خارجی یکی جایی که فتاوای قدما باشه میگه چه اینا طبقه نصوص این اصول متلقات در حقیقت استثناءج برای اولین بار در اصول ما در کلمات علامه محمد این استرابادی اومده اون چه چه اخباری بوده از طرفش شده این حرفا خوب میشه نقل نکردن آره برو دیگه فرمون تو موزا ما بیشتر جا افتاده به اسمای گرجی بد نیست نه مال محمد بن استرابادی است ایشون اول بار مطرح میکنه که میگه اجماع و جرس نیست دارد که فتواه قدما چون این نصوصه قداست دارن او رو قبول میکنن روشن شد از همون قبل 11 ها. ایشان این رو قبول میشنن توضیح بیشتر تن.